مرحبا پیک مشتاقان بده پیغام دوست تا کنم جان از سر رغبت فدای نام تو والب غالب و شیداست دائم همچو بلبل در قفس توتی طبعم س عشق شکر و بادام دوست زلف او دامست و خالش دانه ی دام و من بر امید دانه افتادم در دام دوست سرز مستی بر نگیرد تا به صبح روز هشت هر که چون من در ازل یک جرعه خرد از جام دوز. بس نگویم شمه ای از شرح شوق خود از آنک درد سر باشد نموندن بیش از این ابرام دوست گردهد دستم کشم در دیدهم چون توتیا خاک راهی کن مشرف گردد از اقدام دوست میل من سوی وسال و قصد او سوی فراغ ترک کام خود گرفتم تا براید کام دوست حافظن در درد او می سوز و بی درمان بساز زن که درمانی ندارد درد بی آرام تو